خانوم شکوه ستنه که امروز زن یکی از سرتی پای جاندار و این اواخر طلاق او با پنج بچه از شوهرش سر و صدا راه انداخته بود در سالهای قبل از تبدید استاد 17 یا 18 سال بیش نداشته است در یکی از پرده نقاشی صورت زنی دیده می که تا حدی شبیه به صورت خانوم شکو ستنه در 17 یا 18 سالگی است استاد این رو خیام را مصور کرده است این چرف خفلک بهر حلاک من و تو قصدی دارد به جان پاک من و تو بر سبزه نشین پیاله کش دیر نماند تا سبزه برون دمد ز خاک من و تو استاد سبزه و سرشاخ درختان و سنگ و خاشاک را به شکل سر و صورت انسان ساخته بود و در یکی از این صورتها آثاری که بیشه به یک عکس خانم شکر سلطنه در سنین 17 یا 18 سالگی نیست دیده می شود این را خانم شکر سلطنه قرینه می آورد که استاد او را دوست داشته و دلیلش این است که وقتی انگوشتن نامزدی را در انگوشتش دید از فرد قیز به حدی دستش را فشار داد که دردش آمد خانم شکر سلطنه زندگی پرشروشوری ش... دارد و های فهاش که زمانی هواخوا و گاهی مخالف شوهرش بودند این داستان را وقیحانه جلوگر ساختند معهازا زندگی استاد و سلوکش با مردم طبقات مختلف جوری بود که حتی خانم شکر سطنه هم بیش از این چیزی نمیتواند درباره استاد بگوید سالهای متوالی پس از شهری بر ازازی نقل داستان های عاشقانی از زندگی استاد در روزنامه ها رواج داشت روزنامه دگاران عجیب از چند ته پردازی خود بیرون می‌آوردند. آوردند داستان فرار سرتیپ آر... رئیس شهبانی را روزنامه نویسان با شخ و های هولناک با زندگی و تبعید و مرگ استاد به هم می و به های مخوفی از آب در می‌آوردند. خوشبختانه این قصه دیگر ته کشید و اکنون کم کم دارد فرصت دست میداد. کسی عمیقا درباره زندگی استاد در دوران دیکتاتوری جستجو کند و راز زندگی او را فاش سازد. من با بسیار از که استاد را می شناختند و با او اقلاً چند بار مواجه شداند صحبت کردم اگر از قشر خود خواهی که در گفته های همه اینها هست چشپوشی کنیم چیز زیادی باقی نمیماند. از هر که درباره استاد پرسیدم درباره خودش گفته است. حتی زن ناشناس هم بیشتر از خودش شکایت کرده تا از زندگی استاد. آنچه باقی می ماند این است که رابط استاد با همه اینها چه کسانی که جزو شاگردانش بودند و چه آنهایی که به وسیلهی در مجالس خصوصی و مهمانی ها با او دوست آشنا شده بودند و ووهی نشست و برخواستند سعیمی و صاف بوده است. تنها آن زن ناشناس استسناس. اگر کسی چیزی میداند اوست اما استاد مرد کم حرف و توداری بود و به ندرت خود را شناسانده است. شاید زن ناشناس هم تخیالات خودش را درباره او نقل می کند. به طور کلی آنچه از آنها دریافتم این است که استاد ماکان مرد رازداری بوده، اغلب قیافه ابوس داشته کمتر شوخی میکرده. با اشناهای خود و به خصوص بازنان و شاگردان رک و راست حرف می و هیچ توجهی نداشته است به اینکه دیگران از گفته های او خشنود میشوند یا نه؟ هرگز گفته کسی را چه خوب و چه بد برای دیگران نقل نمیکرد. راضی نمی که در حضور او از دیگران قیبت کنند کم حرف می و اگر صحبت از چند کم تجاوز میکرد بیشتر درباره کار خودش بوده است تا درباره امور عادی زندگی هیچ کس نیست که دوست سعیمی استاد بوده استاد با کسی آمده شد نداشته کمتر ظهر مهمان می و در خانه او باز بوده است هرگز کسی را به نهار و اسمانه دعوت نمی کرده اما همیشه از مهمانانش تا آنجایی که وسایل در اختیارش بوده پذیرایی می کرده است بزرگترین نقاش ایران در صد سال اخیر در چهل و چهار سالگی در و بیس سال تمام مردمی که در آن دوران سرشار در آن دوران سرشان به تنشان میارزیده است او را میشناختند و برایش احترام قائل بودند در آن زمان بسیاری از رجال و اعیان تهران فخر و مباهات میکردند به اینکه یکی از تابلوهای او و یا اقلا کپیهای را که شاگردان از کار و استاد ساخته بودند در خانه داشتند با وجود این هیچکس او را درست نمیشناخته است هیچکس به زندگی داخل استاد وارد نشده بوده است استاد آدم آرامی بود و اجازه نمیداد که کسی به صندوقخانه دل او راه یابد پسوهای روح او مخازن درد و رنج بوده و استاد هرگز میل نداشته مردم بفهمند که چه زجری تحمل کند. همیشه خوش و دلشاد به نظر میامد و هیچ کس نمیتوانست قبول کند که در باتن این مرد آراست و کم مدعا چه شور و در جوش و خروش است. روزی به یکی از شاگردانش که مدتی سبزی او را پاک کرده بود گفته بدبخ مملکتی که من استادان هستم در شهر کوران یک چشمی شاه است.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 دو مرتبه به چکمه راست داشتد و گفت کجا یاد گرفته؟ قربان در فرانسه بوده بعد هم مدتی در ایتالیا به سر برده. علا حضرت همایونی برگشتند که چند کلمهی با خود استاد صحبت کنند و ملاحظه فرمودند که نقاش در سرسرا ایستاده و میخواهد سیگاری آتش بزند خاطر مبارکشان آزارده شد روی برگردارند و به سلطنه فرمودند معلوم است که در فرانسه بوده والا آنقدر که بیادب نمیشد. شیخ علی خانها استاد را مورد اتاب قرار دادند و رندان ترقیبش کردند که بدود و دم اوتوبویل خود را به پای علا حضرت همایونی بیندازد و استقفار کند استاد ابتدا سخت وحش شد سیگارش را دور انداخت چند قدمی از پله ها پایین آمد اما شتابی به خرج نداد علا حضرت هم ما یون سوار مايون سوارشان تشریف بردند همین حادثه باعث شد که وزارت فرهنگ و وزارت صنایع و وزارت بازرگانی و و هنر و وزارت اقتصاد ملی و اداره کل هنرهای زیبا هرگز توجهی به این مرکز هنری نکردند تا که بالاخره کار استاد به کلات کشید و آنجا درگذشت تمام رجال آرزو داشتند که استاد صورت آنها را بسازد می آمدند، از او خواهش میکردند، التماس می کردند. اما او حتی در دورانی که احتیاج به کمک داشت به این خفت در نمیداد. در صورتی که تصویر آقا رجب را رو بارها کشید، پردههایی که استاد از این نوکر ساده وفادار که مسلما یکی از نزدیکترین کسان او بود، کشیده، نشان می که چه خوب در روحی این آدم معمولی تعمق کرده. و میرساند که با چه دقتی حالات مختلف او را ثبت کرده است شاید دلیل مهم دوستی و علاقه استاد با این داهاتی حمدانی این بوده است که استاد بعضی از صفات خود را در نوکر صدیقش منعکس دیده آقا رجب هم رازار بود و دشوار میشد چیزی را که خودش نمیخواست از او درآورد استاد آقا رجب را در یکی از داهات اطراف همدان به اسم ورزک پیدا کرده بود نقاش در شب محتاب روی بام دراز کشیده بوده است و صدای گریه بچه که از خانه همسایه میآمد نگذاشت بخوابد نزدیک سحر استاد بی مقدم به سراغ بچه می رود می بیند که بچه دو ساله اسحال گرفته غی می کند و دارد می میرد. عجب و مادر بچه کنار گهواره کثیف کس کرد و هر دو منتظر مرگ او بودند. استاد بچه را در آب گرم میشید. او را در یکی از خود میپیچد چندتا چند تا قرص با اون میدهد و روز بعد که بچه حال میآید استاد با آبرنگ تصویری از اون میکشد و به پدرش میبخشد دو سال بعد آقا رجب با بچه دومش که گرفتار همان بیماری شده بود با زنش و بچه چاسدش در خانه استاد سبز می شوند. نشانی استاد را از کربلای کلبر... حسین پیشگار خان گرفته بود. و آمده بود که استاد بچه‌هاش را شفا بدهد چون در دهات همدان کسی از این معجزه ها بلد نبود از آن زمان آقا رجا بزنش و بچه هایش در خانه استاد مکان منزل دارند